حرکت به سمت بالا دست رودخانه را شروع کردیم. چیزی به اسم مسیر را خانه های تخریب شده کاملا مسدود کرده بودند. پس برای مدتی در راه قابل تردد ساحل رودخانه پیاده جلو رفتیم. چندین بار پاهایم در جاهای حفره مانند، فرو رفت و سرانجام یک لنگه کفشم از پایم، با اینکه دنبالش کردم اما پیدا نشد. آقای ایتو گفت زودتر بیا. از وسط انبوه خاربانها صدای ناله شخصی به گوش می‌رسید که انگار در کابوس فرار می‌کرد و هیچ راهی نداشت. آتش دنبالش می‌کرد. او را دیدم که صورتش رفته رفته ورم کرد و درد و سوزشش زیاد شد. فرارش راه به جایی نمی‌برد. در حالی که به عنوان یک پزشک به سبب ناتوانی در نجات او احساس مسئولیت می کردم، وجودم به شدت مرا به گریختن سوق میداد. چه ساعتی بود نمیدانم، اما به نظر میرسید دو ساعت طول کشید تا به اینجا برسیم و عازم ساحل رودخانه ای بشویم که از مقابل ایزد نیگیتسو میگذشت. در آن زمان نوری پرید رنگ از آسمان ابری شروع به تابیدن کرد چیزی که بعدا فهمیدم و در بارش فکر کردم این بود که آیا ابر سیاه قارچی شکل بعد از مدتی محو نشده بود؟ پادگانی که آقای ایواتا که در آن بود نزدیک مرکز اصابت بمب اتمی قرار داشت بنابراین بیشتر مسیر فرارشان درست زیر ابر قارچی شکل بود احتمالا به همین علت هم به راحتی واژه هوای ابری را نوشته است با این همه او توانست با بدنی که زخم‌های عمیقی داشت فرار کند و درست از یک قدمی مرگ جان سالم به از برد از 130 سرباز او یکی از سه نفری بود که زنده ماندند. با توجه به یادداشت‌های آقای ایباتا که هنگامی که او همراه دو همخوابگاهیش آزم اطراف ایزد کده شدند. کسی به آنها گفت نزدیک واحد های خطر انفجار وجود دارد. پس از آنجا رد نشوید. بهتر است از جزیره های آبرفتی درون رودخانه بگذرید. بنابراین آنها پتو دور خود کشیدند و در حالی که تا سینه توی آب بودند به جزیره آبرفتی داخل رودخانه رفتند. آن لحظه در سمت میتکی میان دود سیاهی که میجوشید شعله‌های آتش بریده بریده دیده میشد با گفتن اینکه رفتن به میتاکی هم بیفایده است تصمیمشان را عوض کردند و سمت بالادست رودخانه رفتند هنوز احساس گرسنگی نمیکردند چند دستگاه کامیون با عجله به سمت هیروشیما میرفتند که همه نظامی بودند راننده یکی از کامیون‌ها آقای ایواتاکه و همراهان را می‌بیند که از خستگی از پا درآمده بودند. هی، hey, سرباز هستید؟ شمال این کوه جایی به اسم هساکا است. آنجا پناهگاهی دست و پا می‌کنند. پس تلاش کنید به آنجا برسید. ظاهراً پزشک و وسایل مداوا هم فراوان است. درست در شمال این کوه فریاد زد و گذشت. سه نفری گفتند حساکا، حساکا و سمت شمار به راه افتادند آقای ایواتاکه یک لنگ کفش داشت پس لنگان لنگان پی آن دو حرکت می کرد به آنها گفته شده بود پناهگاه درست پشت کوه است اما به نظر می رسید خیلی دورتر باشد حدودا دو فرسخ فاصله داشت در مسیر ردیف نامنظم زخمی هایی وجود داشت که مرده بودند سحنه ای که مو بر تنسیخ مدرسه حساک را پناهگاه کرده بودند اما امداد و نجات خاصی هم در کار نبود. مدرسه یک طبقه فقط دو امارت داشت. در زمین ورزشی کم وت آن با چادر دو اقامتگاه موقت سرپا کرده بودند. هم به مدرسه و هم به چادرها زخمی زیادی وارد شده بودند. با اینکه خورشید غروب کرده بود هنوز زخمیها در صفحی دراز منتظر نوبتشان در راه رو کسانی افتاده بودند و ناله می کردند. افرادی هم بودند که بعد از زمان درازی انتظار وقتی می رسیدند، نفسشان بند می آمد و با پارچهای صورت آنها پوشانده می شد. کسانی هم بچه یا مادرشان را صدا می زدند. درباره درمان هم باید گفت که فقط چند نفر وظیفه داشتند مرکورکروم یا آغشته ی گندم را جای روغن اکسید زینگ روی زخم جماعت بمالند. امکانات پانسمان نبود و تزریق هم انجام نمیشد چون ورم صورت آقای ایواتا که لحظه به لحظه بیشتر و مانند هندوانه شد، پرکهایش به نظر کاملاً بسته می‌آمد. در آن سود، حاول آبکی بزرگی بر گونه همخوابگاهی‌اش آقای میوشی پدید آمد و پوست دستش ور آمد. آقای ایتو علاوه بر اینکه سوختگی گونه داشت، در اثر کوفتگی ردی بر پیشانیش افتاده بود آقای میوشی پزشک متخصص زنان و زایمان بود و همیشه شخصی از دختر بزرگش را در گردن بندی روی سینه آویزان میکرد آقای ایتو در شهرک میوشی مذهب داشت و علاوه بر پزشکی در داروسازی هم متبهر بود به زخم این س نفر هم مرکور کرم والیده شد گوشه ای را در راه را پیدا کرد. پتویی را که با خود آورده بودند، دورشان پیچیدند و شب را به صبح رساندند. صبحانه گرفتند، اما بدون اینکه آن را بخورند، باز هم احساس گرسنگی نمی کردند. شاید این حالت ناشی از یک تشویش درونی بود. گلویشان خشک بود و آب می خواستند، اما از ترس بیماری های مصری باز هم تحمل می کردند. آن سه نفر به هیچ وجه حرف نمی زدند. اصلاً حس و حال حرف زدن هم نداشتند. روز بعد، یعنی روز هفتم هم، نظامی ها و مردم معمولی را از هم جدا کردند. نظامی ها را در کلاس های درس پذیرش کردند. صورت آقای ایواتا که بسیار ورم کرده و نزدیک به دو برابر شده بود و بدون باز کردن پلکها با انگشت نمی توانست جایی را ببین. بنابراین روی برانکارد به کلاس بیمارانی که حالشان وخیم بود، در قسمت شرقی حمل شد. یونیفرم نظامی نیمسوزش را لوله کرده و به عنوان بالش زیر سر آقای میاشی قرار داده بودند. بعد هم به همان شکل به اتاقی دیگر منتقل شد. بنابراین دفترچی یاد داشت، کارت شناسایی و جعبه سیگارش که در جیب یونیفرم بود گم شد. آن زمان، لحظه یه جداییش با آقای میاشی در این دنیا بود. از آقای ایتو هم همانجا جدا شد. با این همه آقای ایتو با پرستاری دلسوزانه همسرش سلامتش را باز یافت و اکنون هم در شهر میاشی به تبابت مشغول است. یاد داشته اضافه شده. آقای ایواتاکه وضعیت بیماریش را در آن روز این گونه شهر می ده. در کلاس درسی که به آن منتقل شدم، یک نفر هم از زخمی های بهداری ارتش نبود. فقط سربازان جوان عادی که زخم عمیق داشتند، آنجا جمع شده بودند. گلویم خشک بود و بیشتر نمی توانستم تحمل کنم. احساس می کردم تمام استخوانهای بدنم خورد شده. لرز شدیدی گرفتم و تب کردم. کمتر از سی و درجه تب داشتم. پلک هایم ورم کرده بود پس چاره ای جز خابیدن نداشتم. روز هفتم ماه اوت یک لیوان آساره برنج تازی شد. در دو روز فقط یک بار ادرار کردم. نوشیدن آب اکیدن ممنوع شده بود اما دیگر نمی تحمل کنم. پس پلک هایم را با انگشت باز کردم. مخفیانه خودم را به چهره سندم و آب نوشیدم. با اینکه آب مزه بد آهن میداد اما انگار زندگی دوباره یافتم و سر حال آمدم هرچند فضای چادرهای حیات مدرسه به شش تخته افزایش یافت باز هم بیماران زیاد بودند جنازه ها هم کنار زمین ورزش روی هم انباشته شده بودند شبکه شد صدای ناله بیماران شدیدتر شد بیماری روانی از پنجره کلاس درس داخل باغ پرید و درون شالیزار پر آب قدم زد. در طول شب نزدیک به یک سوم بیماران آرام گرفتند. جنازه سرد شده یکی یکی آهسته با برانکارد حمل می شدند. به خودم روحیه میدادم که به دلیل سوختگی امکان ندارد بمیرم. اما هر طور که فکر می کردم، دلیل این حجم زیاد از جراحت را آن هم در یک آن نمیفهمیدم پرستاران نام درجه نام واحد نظامی و آدرس وابستگان را می پرسیدند و کارت شناسایی صادر کردند. از آنها تقاضا کردم به بستگانم اطلاع دهند که در اقامتگاه حساکا هستم اما این کار انجام نشد و پزشک کردش یا کسی دیگر هم برای معالجه Now you